من ارائم را با یه ماجرایی در واقع اول سفر ارائم شروع بکنم، سال 84 پنج سال بود که توی کار فنی و توی صنعت بودم، نصب پرسایی سنگین مکانیک و هیدرولیک و سال 84 از کارم استفاده دادم، سمت مدیریت پروژه ای رو رها کردم اومدم بیرون و بعد از مطالعه کتاب هفادت مردمان ما خیلی مشتاق شدم به بهبود روابط و نگرش ها توی محیط کار چون به ذهنم رسید تو اون دوره چهار پنی ساری که کار می کردم داستان ما داستان نگرش ها و داستان ها هستش که توی کار مخدوشه یعنی آدم ها توی فضای کاری یا کمکاری می یا کچکاری می یا دوچار بیکاری هستن و اگر می کشوری داشته باشیم که توسعه پیدا بکنه باید روی نگرش ها و روابط خودمون توی محیط‌های کاری کار بکنیم این دغدغه‌ای بود که آغاز سفر من شد و سال 84 استفای من از شرکتی که توش کار می و رفتن سراغ یه حوضه ای که بعد از اون در واقع کارم رو تو اون مسیر ادامه دادم یه آگه یه استخدام دیدم نوشته بود که از مشاوران مدیریت دعوت به همکاری می شود توی کتاب استفان کاوی هم اینو دیده بودم که مشاوران مدیریت میتونن تغییر ایجاد کنن توی سازمان‌ها، میرن به مدیران مشاوره میدن و خیلی این پوزیشن برام جالب شده بود با اینکه از کسی دیگه هم نشیده بودم و تحصیلات خاصی هم تو حوزه مدیریت نداشتم ولی به هر شکلی بود خودم رو در واقع به اون شرکت رسوندم، معرفی کردم، رزومه فرستادم و اتفاقا به دلیل همون کتاب ها هم مردمان موثر از استفان کاوی و علاقه مدیر عامل اون شرکت مشاوره مدیریت تونستم که خودمو به اون در واقع پوزیشن مشاوره مدیریت برسونم چهار سال توی شرکت توی اون شرکت و مشاوره روی استراتژی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کار میکردیم و توی این چهار سال داستانی که داشتیم این بود که اون چیزی که من باش مواجه شدم و راضیم نمیکرد این که نتایج پروژه های مشاوره مدیریت با هیئت مدیره ها با مدیران شرکت ها اکثرا منجر می‌شد به یه سری از داکیومنتایی که می‌رفت توی آرشیو مدیران عامل یا هیئت مدیره ها پایگانی میشد معمولا و من اون تغییر رو که دوست داشتم توی اون فضا نمیدیدم ولی یکی از فوایدی که داشت اون دوره حالا غیر از آشنایی با مدیران و آدمای فرهیخته ای که خیلی به من کمک کردن آشنایی با چند تا کتاب بود یکیش کتاب برنامه‌ریزی تعاملی راسل ای بود که توی اون یاد گرفتم که برنامه‌ریزی رو سی با مردم انجام داد و از طریق اونها نه اینکه فقط برنامه‌ریزی رو درس هیات مدیره ها انجام بدی و در بالا این نکته‌ای بود که از اون کتاب واقعاً درکش کردم و کتاب سینکه که در مورد تغییر الگوهای ذهنی بود و روی این تاکید می‌کرد که چقدر مهمه اگر می‌خواین تحولی رو جایی اتفاق در واقع روی بدید بایستی اون تحول در نگاه ها و در الگوهای ذهنی و پارادایم‌های ذهنی اون در واقع سازمان اتفاق بیفته. دو تا کتاب دیگه یکیش کتاب هشخانه تحول و نقش دلر مدیریت من با این موضوع مباجه کرد که شما فقط به شکل منطقی و عقلانی نمیتونه تحول ایجاد بکنی اگر میخوای تحول واقعی و یا تولد مجدد رو ایجاد بکنی بایدی به نوعی احساسات و حیجان، حیجانات هیجانات افعان و اون مخاطبات رو باید به نوعی درگیر بکنیم این هم نکته‌ای بود که در واقع اون گپی بود که من توی پروژهای مشاوره مدیریتی که میرفتن تغییرات بکنن تو اونا دیدم دیدم جلسهای خیلی جدی برگزار میشه به صورت منطقی همه مجاب میشن که اگر این کارو بکنن بهتر از اینه که این کارو بکنن ولی کسی از جاش بلند نمیشه بره اون کارو بکنه و نکته‌ای بود که جان پی کوتر میگفت میگفتش که اگر شما میخوان کاری بکنین که اعضای مدیره از جاشون پاشن اون قدمی رو که شما پیشنهاد دادین انجام بدن شما باعثی به نوعی احساس اونها رو برنگیزین تا اونا از جاشون دور سندلی صیف مدیریتیشون بلند بشن و مشتبه کارشانی که موضوع نقش دل در مدیریت رو مطرح کرده بود سال 83 کتابی نوشته بود که اه، اه، کتاب فوقالاده کتاب ارزشمندی برای مدیران و توش اشاره میکنه میگه توی قرب شاید راه رسیدن به قلب قلب و آدم ها و احساساتشون از طریق اقلانیت و مغزشون باشه و عقلشون باشه. ولی توی جوامع مثل ما توی شهر راه رسیدن به عقلانیت آدم ها از کانال قلب قلبشون اتفاق میفته و با همین استعاره به این اشاره می‌کرد که ما بعد محیط‌های کاری خودمون رو خیلی خشک و جدی طراحی نکنیم و پیش نبریم اگر می‌خوایم کار خوب جلو بره بهره‌وری خوبی داشته باشیم بایستی آدم‌ها اول دلشون به کار بره تا بعد دستشون هم به کار بیاد ذعر مسائلای که خیلی داره میگن طرف اگر دلش به کار نباشه هر کار بکنی دستش به کار نمیره و این مسیر سوال برای من شروع شد که چیکار بکنم که بتونم دل آدم‌ها رو تو محیط‌های کاری درگیر بکنم به اصطلاح دیگه کارشناسی داشت به اسم خانه تکانی فرهنگی و میگفتش که ما باید توی صنعت یه خونه تکونی بکنیم باید باورهای زنگ زده و اندیشه های منجمدمون رو درش بازنگری بکنیم الگوهایی که احتمالاً الان ناکارآمد هستن و من اونجا یه بار دیگه سویچ کردم سال 88 رفتم یه شرکت آموزشی که روی ترینینگ مدیران و کارکنان تو سازمان ها کار میکردم با کمک بازی های مختلف و به کمک در واقع های تسلیلگری و کار گروهی و شیوه های نوین خیلی کارگاه آموزشی محسر و جذابی برگزار میکردیم جوری که آخرش همه رضای سنجیه خیلی بالا همه حال خیلی خوب و توی مدت با برند خیلی مختلفی هم کار کردیم گروهی که باش کار کردم نوبانگ اندیشه بود که حدود چهار ساعت بعدش هم ادامه دار بود این همکاری ما با هم دیگه ولی باز اونجای اتفاقی که نمی ما اونجا آموزش شد داشتیم به شکل خیلی هیجانی و به شکل خیلی در واقع در مخته خودش محسر ولی اونی که من میخواستم تغییر تحول و تولد مجدد رو باز تو اینم نمیدیدم چون ما میرفتیم کارگاه یک روزه تا سه روزه می کردیم این کارگاه ها جذاب بود ولی اون اثر رو به صورت پایدار توی اون سیستم ایجاد نمیکرد و وقتی که من سال 90 در واقع با کیسون آشنا شدم کیسون یه واحدی رو را راه انداخته بود به اسم توصیه انسانی پایدار که توی این واحد یه طراحی کرده بودم ارگوی خیلی خاصی که واقعا توی شرکت‌های ایرانی من توی این چند سال پرسه زدنم و دور زدنم ندیدم چنین الگویی رو و ارگوی خیلی جالبی بود میومدن کامیونیتی‌های مختلف رو تو دل پروژه‌ها ایجاد می‌کردن کامیونیتی‌ها رو توانمند می‌کردن و این کامیونیتی‌ها کمک می‌کردن به پیش برد تغییر توی پروژه ها به تغییر فرهنگ به افسایش شغب در واقع اهدافی که این واحد توسعه انسانی پایدار برای خودش انتخاب کرده بود یکیش این بود که عزت انسان رو در واقع یه جور بازیابی بکنه توی محیط سنتی، محیط کار یه جور بهش توجه بیشتری بکنه یعنی مدیرانی که خیلی task oriented هستن رو بتونه یه مقدار پیپل oriented بکنه و شرکتی که فقط دنبال هدف و دنبال تحویل پروژه هست رو به نوعی بهش یادآوری بکنه که حواست به آدم ها هم توی این مسیر باشه و برای یه جامعه محلی دوربر پروژه ها در واقع هدفگزاره کرده بود که بتونه کمکشون بکنه و وقتی توی پروژهی میره یه, در واقع یه آسیبی رو به یه پروژه وارد میکنه سعی بکنه بخشش رو جبران بکنه و بتونه قدم بیشتری هم غیر از جبران بتونه برداره الگوی کار توی کیسون به این شکل در واقع یواش شواش تررایی شد که ما وقتی میرفتیم توی یه پروژه از توی جمع پراکنده کارکنان که دارن در واقع برای خودشون روزمرگی میکنن ما میرفتیم مثل نشست نشاستهای میذاشتیم از توی این نشست ها اومدیم کامیونیتی ها رو کار در واقع های مختلف رو شکل میدادیم که این ها رو اشاره میکنم که چه کار کارگورهایی رو ما انتخاب کرده بودیم از بین این کارگروه ها می یه کمیته مرکزی ایجاد میکردیم و این مدل باعث میشد یه جماعتی به صورت داوطلبانه توی یک پروژه شروع کنن، به مسائل خودشون فکر بکنن و برای بهبود اوضاع سیستم و سازمان خودشون قدم بردارن کارگروه هایی که روش کار میکردیم اینا بودن فرهنگ و هنر، سفر و گردش کردیم، اجتماعی، محیط زیست، کارگروه توسعه توانمندی ها و ورزش اینا کارگروه هایی بود که ما پیشنهاد میدادیم ولی باز اگر سازمان گروهی بود میخواست کارگروه دیگری داشته باشه ما استقبال م یه کوچیک راجع به سنت ساختمان بگم سنت ساختمان میخوام اینو بگم بدون که این اتفاقات تو ج... چه جریانی افتاد تو چه سنتی. سنت ساختمان یه سنت سخت و خشنه بعد از معدن یکی از خشن ترین محیط های کاری رو ما توی سنت ساختمان داریم و روابط آدما با همدیگه آدما با کارفرما و کارفرما با پیمانکارانش و زینفانش روابط روونی نیستش خصوصا توی ایران این روابط روابط مخدوشیه و مسئله داره ها خیلی مهمن توی این درواقع صنعت ما حالا مثال میزنم حتی تو خودمون کیس هم وقتی تو سالون دفتر مرکزیش میری، تمام در و دیوار پر از پروژه های صنعتیه صددی که ساخته شده پالشگاهی که ساخته شده ساختمانایی که ده هزار وات مسکونی اینجا ده هزار وات مسکونی اونجا شما نشونی از آدم ها توی این فرایند نمیبینید و این این جریان توی اون صنعت و توی اون در فضا افتاد و سال 86 کیسون پروژه ای داشت پروژه 1000 10 واحد مسکونی توی ونزوئلا که تقریبا دو سال دو سال و نیمه تمومش کرد خیلی سری نسبت به خیلی از شرکت‌های خارجی دیگه و سال 90 پروژه بعدیش رو استارت زد که توی اون پروژه پروژه بعدی در واقع من آشنا شدم و معرفی شدم به اون پروژه برای راه اندازی این جریان در پروژه ونزوئلا سال 91 در واقع من سفرم رو به ونزوئلا شروع کردم و دیگه متمرکز شدم به راه اندازی این جریان با همه چالش ها و داستان هایی که داشت، همه هایی که بود و برای من یه تجربه ساخت که امیدوارم تو این چند دقیقه باقی مونده بتونم درمیون بذارم باهاتون. یه مقدار مسئله ونزوئلا بگم باز برای اینکه کانتکست اونجا قشنگ بتونیم درک بکنیم فاصله خیلی زیاد همکارانی که دارن از خانوادهشون دور میشن یا سه ماه چهار ماه یک بار و کارگرها اصلا تگمیسیان های فنی شش ماه یک بار میتونستن برگردن خانواده رو ببینن تاخیر توی حقوق رو داشتن اونجا یعنی خود این یه پارامتری بودش که داستان داشت براشون فرهنگ کار متفاوت، سندیکاهای های کارگری بسیار فعال توی ونزوئلا و اینها اصلا شوخی نداشتن و اینها برای فرهنگ ما خیلی سنگیله، ما اصلا باورمون نمیشه که یه سری آدم که دارن کار میکنن ما بهشون مضمیدیم به راحتی اینا میتونن پروژه رو تعطیل بکنن و سه روز تمام چهار روز تمام اصلا کار رو تعطیل بکنن. اونورم تعهدات پروژه است و این سندیکاها ها هم توی خود پروژه هم اطراف پروژه کامینیتی محلی به شدت مطالبه میکردن از شرکت یعنی میگفتن باید برای ما راه بسسازی باید برای ما یعنی مسئولیت اجتماعی اونجا اجباریه. اینجا هر چقدر که اختیاریه و هنوز مردم، حقشون رو در واقع نمیدونن و آگاهی ندارن از شرکت ها که چقدر باید مطالبه بکنن توی اون ش... کشور مردم همه میدونن چون تمام مردم سواد سواد خیلی آمارش بالاست و همه قوانین آشنایی دارن و به خاطر همین این دلیلی بود که شرکت‌های خارجی خصوصا ایرانی‌ها نمیتونستن تو این فضا مشکل برمیخوردن اه... ناامنی شهرها هم بگم که یه بار مثلا خود من داشتیم ساعت از این آخره پروژه بود ساعت 9 9:30 شب خونه با یه گروه همکارامون حدود 6 نفر با اسلحه اومدن ماشین رو کنار ما نگه داشتن سه نفر مسلح پیاده شدن ما رو چسبوندن به نرده‌ها و در واقع هرچی جیبمون اندازشون خالی کردن. و این اتفاقی بود که خیلی به کرات برای همکارا میافتاد فضای ناامن شما بعد ساعت پنج و از ساعت 5:56 است جرئت نمی‌کنی تنهایی تو جای خلوت رفت و آمد بکنی من اینا رو دیگه سریع‌تر رد می‌کنم و این یه در واقع تصاویری از فضای پروژه‌ای که اونجا شروع شد و کاری که داشتم میکردن اینا پروژه‌ای بود که ساختمانایی بود که اونجا می‌ساختن سه تا پروژه بود توی سن فلیپه والنسیا و بارک که هر کدوم 2500 و 3000 و 4000 واحد مجموعاً 108 واحد تعهد کیسون بود که توی دو سال و نیم سه سال بتونه تحویل بده این پروژه بارک و ما بلافاصله بعد از ورود دوباره نشستامون رو شروع کردیم نشستایی که به بهانه اون نشستا قرار بود کامیونیتی‌ها رو در واقع راه بندازیم این ها خیلی مهمه ما چون از قدیم داشتیم داشتیم داستان شورا و کمیته و این حرفها ولی به صورت بخشنامه بوده یا به صورت پایدار این کمیته ها معمولا دوام نمیارن توی سازمان ها خصوصا توی سازمان ها توی بیرون سازمان ها تو جامعه مردم داوطلب واقعی ان توی سازمان ها همه رابطه شون تو فضای کاری رابطه دو, دو تا چهار تا است یعنی میگن به من چی میمونه به من چی میبینین که من بیام این کار رو داوطلبانه رو بکنم علاوه این جنس راه اندازی فعالیت داوطلبان اون فضای سازمانی یه مقدار پیچیده‌تره چند تا اتفاق افتاد حالا اینم کوچیک بگم که مدیران پروژه بزوللا خیلی استقبال نمیکردن از ورود این جریان به خاطر هزینه هایی که داشت به خاطر درد سرایی که داشت و به خاطر چیزهای دیگه که نمیدونستن چیه. چون یه الگووییه که خیلی مبهم این شرکتی قبلا نداشته کپی نمیتونستن بکنن توی چارت چارتای پروژه تا حالا نبوده مدیران پروژه استقبال نمیکردن و به شدت این جریان راهدازی این, این توسعه انسانی پایدار مثلا نزدیک به 6 ما به تعویق افتاد تا آخر ما یه پیشنهدید این گفتیم که شما، سه ماه اجازه بدید ما بیایم این جریان رو راه بندازیم، برگردیم بعد خودتون مدیریت بکنید. و با به این شک مدیران پذیرفتن و ما رفتیم این جریان رو را راه انداختیم و تو این سه ماه ما سعی کردیم اتفاقایی رقم بزنیم که مزه تغییر و تحول و بهبودو به چشونه به مدیران پروژه تا این تو ذهن مدیر نهادی نبشه. یکی از کارهایی که خود بچه ونزوئلایی پیشنهاد دادن، یکی از همکارای ونزوئلایی پروژه سانفیلیپه گفتش که ما کریسمس که میشه سال نو یه درآ رو میایم کاغذ کادو می کنیم. وقتی که کاغذ کادو کردیم، این, این درواقع میشه خوش آمد به سال نو. به ما گفتش که اگه میشه اینو به صورت یه پروژه مسابقه بکنیم که همه درگیر مسابقه باشن. من خیلی استقبال کردم. و وقتی که این ماجرا رو آگاهی کردیم، آگاهیش هم خودشون درست کردن. باز الگوی کار ما این بود که ما قرار نیست بریم اونجا سرویس بدیم به مثلا 700 تا ایرانی و 10000 نفر ونزوئلی. قرار نیست ما بریم به اونها سرویس بدیم. قراره که های داوطلبانی خودشون رو فعال بکنیم. و از بین خودشون همه این کارها رو قسمت اجرایشو در وقت خودشون جلو میوردن و این اتفاقایی بود که گوشه‌ای از اتفاقایی که تو اون چیز افتاد ما دو تا مدیر پروژه که نامزد نامزدیم اصلا استقبال نکردن یکی از مدیر پروژه گفت باهاشه بعد از یه هفته به من زنگ زد گفت علی نمیدونم چه اتفاقی افتاده یعنی انقدر اینقدر بچه‌ها بعد از ساعت کاری ساعت 5 به بعد تا ده شب وای میسن با هم, هم به یه رقابتی افتادن و چنان کارهای قشنگی دارن در میارن که اصلا خیلی فضای کار رو عوض کرد که بعد ما برای داوری رفتیم رفتیم ادرا رو در واقع داوری کردیم و ولی موضوع این بود که این بعداً تبدیل شد به یه جریانی که فرصت بشه براتون میگم یه کار دیگه که جالب بود تو یک از پروژه‌ها تو مقطعه پر از شاپرک و پروانه بود این شاپرک پروانه ها رو کردیم سوژه یه مسابقه عکاسی میخوام میگم چه اتفاقای ساده‌ای تو اون اولیه کمک کرد که ما ذهنیت مدیران و همکاران نسبت به این جریان عوض بکنیم همین اتفاق ساده در پروانه ها و شاپرک ها کمک کرد که ما یه مسابقه عکاسی پروانه پرنده را انداختیم و این پروانه و پرنده‌ها تمام خانواده های ونزوئلا را درگیر کردن خانواده‌هایی که کنار پروژه ما در واقع منطقه گنگستری بود گنگستری بود به نام به نام سابیلا خیلی منطقه خطرناکی بود و رابطه خیلی خوشایندآمیزی هم با همکاران ایرانی داشتن و ما بچه های اینا رو تو این پروژه تو این مسابقه درگیر کردیم همه رو گفتیم بیاین نقاشی مسابقه در واقع نقاشی پروانه هم گذاشتیم اونها هم درگیر شدن نمایشگاه گذاشتیم دعوت کردیم خانواده‌های ونزوئلایی رو با ایرانی‌ها رو اومدن توی پروژه بازدید کردن از این در واقع نمایشگاه بازدید کردن و یه نهاری با هم دیگه خوردیم، رفتیم داخل پروژه خیلی اتفاق خوبی بود به برنده ها جایزه دادیم برنده ونزوئلایی برنده ایرانی و برنده دیگه این هم پوستر مجموعه کاریه که جمع شد گروه موسیقی را انداختیم یکی از مدیران گفتش که من موسیقی دوست دارم بزنم و به کمک اون گروه موسیقی را انداختیم همکاره بنزولایی هم دعوت کردیم موسیقی تلفیقی ایرانی بنزوی در واقع بنزولایی و اینم خودش تو بهبود روابط بین کارکنان و و در واقع بنزولایی‌ها ایرانی‌ها و بنزولایی‌ها خیلی کمک کرد این هم بچهای گروه موسیقی هستن شاهین نادری که خودش مدیر در واقع از قسمت های پروژه بود و جشن پونسد نفری که ما چندین جشن رو دیگه گروه موسیقی خودمون اجرامی کردن اتفاق خوبی که افتاد توی یکی از پروژه‌هایی که قبلش این ماجرا رو خیلی باور نداشتن ولی بعد خودشون برای در واقع به یه مناسبت دیگه مسابقه اتاقاره‌هایی گذاشتن و اتفاقات خیلی خوبی تو اون پروژه دیگه افتاد یعنی وقتی اثراتش رو توی یه پروژه دیدن دیدن که میشه پروژه رو خیلی جدی و خشک نگرفت میشه گفتش که پروژه در واقع ساختمانی خیلی جای جدی و خشنی نیست و نکته مهمتر از اون اینه که داستان اعتمادی بود که ایجاد شد یعنی توی یه بازه سه ماهه با حدود 10 تا اکتیویتی دیگه اعتمادی بود که جوونه زا توی اون پروژه و مدیران پروژه بعد از برگشتن من به ایران خودشون اسرار داشتن که حتما این جریان ادامه پیدا بکنه برای اینکه تونستن تجربه بکنن و درک بکنن که این کار میتونه چقدر فایده باشه ولی موفقیت این کار به یمن جلسات توانمندسازی و کار کردن روی اعضای داوطلب اون کامیونیتی ها بود 300 تا اکتیویتی رو در واقع توی یک سالونین بعد از برگشت من 300 تا اکتیویتی انجام شد و هزار نفر برنامه که باز یه چشمه از یک از این مال پروژه پارک سیمتوره مجموعه اقداماتی که در واقع توی اون پروژه انجام شد پروژه سان فیلیپه و نهایتاً این که ما تونستیم یعنی به کمک خود دوستان و مدیرانی که کمک کردن تونستیم نگرش همکاران رو نسبت به کار نسبت به همکار و نسبت به جامعه و محیط زیست تونستیم تغییر بدیم و این فرهنگی که در واقع دنبالش می‌گردیم بعدم نظر سنجی هم کردیم آن کردن که این اتفاق افتاده توان تفکر و تحلیل اجازه شد به صورت گروهی باندهای باندهایی که اونجا بودن سعی کردیم تبدیل کنیم به گروه‌های هم علاقه من اینا خلاصه میکنم و درسی که مجموعه من از این ماجرا گرفتم چون بعد از برگشتم از ونزوئلا ما یه مدرسه رو درست کردیم به مدرسه اکسیژن که با ترکیب این الگوی کممیتی به استبللوپمن به اضافه دورهای تریننگ آموزش که داشتیم بتونیم بریم توی سازمان ها فضای تغییر رو با هم دیگه ایجاد بکنیم. یک کارکنان رو بشننویم آدمما رو تو هر جایی که هستن بشنویم اونا رو به شوق بیاریم اگر می تغییر اتفاق بیفته و اونا رو خودشون رو توی برنامه ریزی و توی اجرا مشارکت بدیم. این در واقع درسی بود که من داشت گرفتم توی این چند سال و دوست داشتم با شما هم سحیم بشم. خیلی ممنون از وقتی که به من حدود فکر کنم یک تا دو دقوع دو دقیقه اضافه شده سخنرانی متشکرم مرسی